بخش دوم انقلاب کشاورزی پنج بزرگترین فریب تاریخ انسانها طی تا دونیم میلیون سال از طریق گردآوری گیاهان و شکار حیواناتی ارتضاق میکردند که بدون دخالت انسانی زندگی و تولید مثل میکردند انسان راستقامت، انسان کارگر و ها انجیر وحشی میچیدند، گوسفند وحشی شکار میکردند بدون آنکه تصمیم بگیرند درخت انجیر کجا باشد و گله گوسفند در کدام علفزار بچرد. انسان خردمند از آفریقای شرقی تا خاورمیانه و در ادامه تا اروپا و آسیا و در آخر در استرالیا و آمریکا پراکنده شد. اما هر جا که رفت به جمعاوری گیاهان وحشی و شکار حیوانات وحشی ادامه داد. وقتی شیوه زندگی جاری غذای کافی و دنیای از ساختارهای اجتماعی، اعتقادات دینی و پویایی سیاسی را در اختیارش میگذارد چه نیازی به تغییر میتواند باشد؟ در حدود ده هزار سال پیش، از وقتی که انسان خردمند شروع به صرف تمام اوقات خود برای دستگاری کردن در زندگی معدودی از گونه های حیوان و گیاه کرد، همه چیز تغییر کرد. انسان خردمند از بام تا شام به بزرفشانی و آبیاری در آوردن علف های هرز از خاک و چراندن گوسفندها در مراتع اولیه می پرداخت و گمان می کرد که این کارها میوه و غلات و گوشت بیشتری به او دهد. این انقلابی در شیوه زندگی انسان بود که آن را انقلاب کشاورزی می‌نامیم. گذار به کشاورزی در حدود 9500 تا 8500 سال قبل از میلاد در تپه های جنوب شرقی ترکیه، غرب ایران و شرق مدیترانه آغاز شد. این روند به آرامی در یک محدوده جغرافیایی کوچک شروع شد. گندم و بوز در حدود 9000 سال قبل از میلاد اهلی شده بودند. نخود و عدس در حدود هزار سال قبل از میلاد، درخت زیتون در هزار سال قبل از میلاد، اسب در حدود 4000 سال قبل از میلاد و انگور در 3500 سال قبل از میلاد اهلی شدند. بعضی از حیوانات و گیاهان مثل شطور و بادام هندی بعدها اهلی شدند اما در حدود 3500 سال قبل از میلاد موج اصلی اهلی سازی به انجام رسیده بود. حتی امروز با وجود تمام پیشرفت‌های تکنولوژیک بیش از 90 درصد از کالری‌هایی که انسان از آن تغذیه می‌کند بر گرفته از معدود گیاهانی است که نیاکان ما در فاصله میان 9500 و 3500 سال قبل از میلاد فراهم کردند مثل گندم برنج ذرت سیب زمینی ارزن و جو هیچ گیاه و حیوان با اهمیتی در طی 2000 سال اخیر اهلی نشده اگر ذهنیت ما ریشه در میراث نیاکان شکارگر خوراکجوی ما دارد، آشپزی ما ریشه در دوران کشاورزی کهن دارد. محققان زمانی گمان می‌کردند که کشاورزی از یک نقطه در خاورمیانه به سایر نقاط دنیا گسترش یافت. امروز محققین با هم توافق دارند که کشاورزی توسط کشاورزان خاورمیانه به چهار گوشه دنیا صادر نشده، بلکه به ای کاملا مستقل در مناطق مختلف تکامل یافته. مردم آمریکای مرکزی ذرت و لوبیا را بدون هیچ اطلاعی از کشت گندم و نخود در خاورمیانه به عمل آوردند. مردم آمریکای جنوبی کشت سیب زمینی و اهلی کردن لاما را بدون اطلاع از تحولات مکزیک و شرق مدیترانه آموختند از اسنادهای اولین پیشگامان چینی کشت برنج ارزن و پرورش خوک بود باغبانهای اولیه آمریکای شمالی از جستجو به دنبال کدوهای خوراکی در زیر گیاهان خسته شده بودند و تصمیم گرفتند کدو تنبل کشت کنند ساکنان گینه نو به کشت نیشکر و دست زدند در حالی که اولین کشاورزان غرب آفریقا، ارزن آفریقایی، برنج آفریقایی، ذرت خوشعی و گندم را در پاسخ به نیازهایشان فراهم کردند. از قرن اول بعد از میلاد، قالب مردم در وسیع ترین نقاط دنیا کشاورز بودند. چرا انقلاب‌های کشاورزی در خاورمیانه، چین و آمریکای مرکزی صورت گرفت نه در استرالیا، آلاسکا و آفریقای جنوبی؟ دلیل آن است. بخش غالب حیوانات و گیاهان قابل اهلی کردن نیستند. انسان خردمند می‌تواند قارچ‌های خوشمزه به بچیند و ماموت‌های پرپشمی را از پا درآورد، اما اهلی کردن هر گونه ای امکان پذیر نبود. اداره کردن قارچها دشوار بود و جانوران عظیم و جسه هم بسیار وحشی بودند. از میان هزاران گونه که نیاکان ما شکار کردند و جمع بری کردند، تنها معدودی از آنها گزینه‌های مناسبی برای کشاورزی و دامپروری بودند. این گونه های معدود در مناطق خاصی وجود داشتند و در این مناطق بود که انقلاب کشاورزی رخ داد. محققین پیش از این بر این باور بودند که انقلاب‌های کشاورزی برای بشریت جهش بزرگی به پیش بود. آنها از پیشرفتی سخن می‌گفتند که با قدرت مغز تحقق می‌یافت. تکامل به تدریج انسان‌های هوشمندتری را به وجود آورد. انسانها به تدریج به قدری باهوش شدند که بتوانند رازهای طبیعت را کشف کنند، گوسفند را رام کنند و گندم را کشت کنند. آنها به محض اینکه به این دستاوردها نائل شدند، زندگی خسته کننده و خطرناک شکارگر خوراکجو را با رضایت خاطر رها کردند و به صورت دائمی ساکن شدند و از زندگی رضایت بخش و دلپذیر کشاورزی بهرهمن شدند. اما این داستان یک خیال بافی است. مدرکی مبنی بر اینکه انسانها به مرور زمان باهشتر شده باشند در دست نیست. خوراکجویان بسیار پیش از انقلاب کشاورزی با اسرار طبیعت آشنا بودند زیرا بقایشان منوط بود به شناخت مکفی از حیواناتی که شکار میکردند و گیاهانی که جمع‌آوری میکردند انقلاب کشاورزی به جای اینکه منادی اصر جدیدی از زندگی راحت برای کشاورزان بوده باشد منچه ای یک زندگی سختتر و ناخوشایندتر از زندگی در دوره قبل بود شکارگر خوراکجویان اوقات خود را به نحو حیجان انگیستر و متنوعتری تری می و کمتر در معرض قهطی و بیماری بودند. انقلاب کشاورزی قطعاً مقدار غذای بشر را بیشتر کرد. اما این مترادف با غذای بهتر و اوقات فراغت بیشتر نبود بلکه به معنای یک افزایش انفجارآمیز جمعیت و شکلگیری یک قشر ممتاز تنپرور بود. کشاورز معمولی در مقایسه با خوراکجوی پیشین کار دشوارتری داشت و غذای بدتری به دست می آورد. انقلاب کشاورزی بزرگترین فریب تاریخ بود. چه کسی مسئول بود؟ نه شاهان، نه کشیشان و نه تجار. مقصرین معدودی از انواع مختلف گیاهان از جمله گندم، برنج و سیب زمینی بودند. در حقیقت این گیاهان بودند که انسان خردمند را اهلی کردند، نه بالعکس برای یک لحظه به انقلاب کشاورزی از زاویه یک گندم نگاه کنید. ده هزار سال پیش گندم تنها یکی از انواع متعدد علفهای وحشی بود که در محدوده معینی در خاور میانه می روید. ناگهان ظرف یک دوره کوتاه چند هزار ساله در تمام نقاط دنیا کاشت می شد. گندم بر اساس میارهای پایه تکامل برای بقا و باز تولید یکی از موفق ترین گیاهان در تاریخ کره زمین بدل شد. شما می توانید امروز از میان صدها کیلومتر مزاره در مناطقی مثل گریت پلینز در آمریکای شمالی عبور کنید بدون آنکه چیز دیگری به جز گندم در آنجا ببینید. اما ده هزار سال پیش در آن منطقه حتی یک ساقه گندم هم نمی روید. گندم در سراسر دنیا مساحتی معادل دو میلیون و دیویست و هزار متر مربع از سطح کل زمین را پوشانده. این یعنی تقریباً ده برابر مساحت بریتانیا. این علف چطور از یک جایگاه ناچیز به یک پدیده همه حاضر بدل شد. گندم این کار را با اقوای انسان خردمند در مورد امتیازاتش انجام داد. این میمون تا ده هزار سال قبل زندگی نسبتاً راحتی را با شکار و گردآوری خوراک میگذراند اما بعد شروع به صرف نیروی بیشتر و بیشتر روی کشت گندم کرد. انسان ظرف چند هزار سال در بسیاری از نقاط جهان کاری به جزی نداشت که از بام تا شام وقت خود را روی کشت گندم بگذارد. این کار آسانی نبود، گندم انرژی بسیار زیادی میطلبید. گندم از سنگ و شن خوشش نمی آمد بنابراین انسان خردمند ناچار بود کمر خود را برای هموار و آماده کردن زمین خورد کند. گندم خوش نداشت تا فضا آب و قنای خاک را با دیگر گیاهان تقسیم کند. پس مردان و زنان بیشماری آستین بالا زدند تا در تمام طول روز زیر آفتاب سوزان زمین مزروعی را وجین کند. گندم میتوانست ناخوش شود پس انسان خیردمند میبایست هوشیار باشد و از او در مقابل کرم و آفت محافظت کند. گندم میتوانست خوش حجوم خرگوش و ملخ شود پس کشاورزان ناچار بودند، حسار بزنند و به نگهبانی از مزرعه بپردازند. گندم تشنه میشد پس انسانها مجبور بودند آب را از چشمه ها و نهرها هم کنند و آن را آبیاری کنند. گروستنگی گندم همچنین انسان خردمند را وادار به جمع آوری مدفوع حیوانات می کرد تا از آنها به عنوان کود برای خاکی استفاده کند که گندم در آن می روید. بدن انسان خردمند برای کارهای مثل رفتن سنگ و حمل سطل آب ساخته نشده بود بلکه بیشتر برای بالا رفتن از درخت سیب و دویدن دنبال آهو سازگاری داشت. بهای این همه را کمر، زانوها، گردن و کف پاها پرداختند. مطالعاتی در مورد اسکلت‌های کوهن نشان داد که گذار به دوران کشاورزی با خود موجی از بیماریهایی مثل جابجایی های کمر، آرتروز و فتخ به همراه داشت. علاوه بر این، وظایف جدید کشاورزی به قدری وقت می‌طلبد که مردم را ناچار می‌کرد که به طور دائم در جوار مزرعه‌های گندم خود ساکن شود. این امر به طور کامل شیوه زندگی آنها را دستخوش تغییر کرد این ما نبودیم که گندم را اهلی کردیم بلکه این گندم بود که ما را اهلی کرد واژه دامستیکیت به معنی رام و اهلی و خانگی کردن از ریشه لاتین دوموس به معنی خانه میآید بنابراین این چه کسی است که در خانه زندگی می کند؟ این انسان خردمند است نه گندم چطور گندم انسان خردمند را قانع به عوض کردن یک زندگی نسبتا رضایت بخش با یک زندگی نکبت بار کرد و در ازای این گندم چه چیزی به انسان داد در هر صورت غذای بهتری به او نداد به خاطر داشته باشید که انسان یک میمون همه چیز است و به تنوع وسیعی از غذا ها نیاز دارد قلات قبل از دوران کشاورزی تنها بخش کوچکی از غذای انسان بودند غذایی که بر پایه غلات پنا شده باشد فاقد مواد مدنی و ویتامین کافی است و حزم آن برای دستگاه گوارش دشوار و برای دندان و لثه مضر است گندم به انسان امنیت اقتصادی نداد زندگی یک کشاورز در مقایسه با زندگی خوراکجوی كهن از امنیت کمتری برخوردار است بقایی شکارگر خوراکچو به تغذیه از گونه های بسیاری وابسته بود و به همین دلیل توانست دوران سخت را بدون انباشت غذایی دوام آورد. اگر دسترسی به یک گونه کم شد، امکان جماوری و شکار بیشتر گونه های دیگر میسر بود. جوامع کشاورزی تا همین دوران اخیر بر پایه دریافت حجم عظیم کالری از معدودی از گیاهان اهلی قرار داشت. در بسیاری از مناطق کشاورزان فقط به یک نوع غذا اکتفا می کردند مثل گندم، زمینی یا برنج. اگر باران نمی آمد یا موجی از ملخ سر می رسید یا اگر قارچ آن گونه غذای اصلی را آلوده می کرد هزاران و میلیون ها کشاورز از گرسنگی تلف می شدند. گندم نمی توانست انسان را از خشونت انسانی هم در امان دارد. کشاورزان اولیه، اگر نه بیشتر از نیاکان خوراکجوی خود حداقل به اندازه خود آنها خوشونت طلب بودند. کشاورزان مایملک بیشتری داشتند و نیاز به زمین بیشتری برای کشت داشتند. فقدان مرتع برای همسایه های وحشی میتوانست تفاوت میان بقا و قهدی باشد. پس جای بسیار کمتری برای سازش بود. وقتی یک گروه خوراکجو شدیدن توسط رقیب قوی تر تحت فشار قرار می امکان کوچ کردن برایش وجود داشت. این کار دشوار و خطرناک اما عملی بود. اما وقتی یک دشمن قوی یک روستای زرایی را تهدید می کرد، یک عقبنشینی به معنی دست کشیدن از مزاره، خانه و انبار آزوقه بود. این در موارد زیادی برای کسی که عقب می‌کند، حکم قهطی داشت. به این دلیل کشاورزان متمایل به ایستادن و جنگیدن برای یک سرانجام تلخ بودند. بسیاری از تحقیقات مردمشناسی و باستانشناسی نشان می دهند که در جوامع ساده کشاورزی که فاقد چارچوب های سیاسی فراتر از چارچوب های داخلی روستا و قبیله بودند خشونت انسانی عامل تقریباً پانزده درصد از مرکا بوده که بیست و پنج درصد آن مرد بودند. در گینه اینوی کنونی در یک جامعه قبیله کشاورزی به نام دانی خشونت علت سی درصد از میزان مرگ در میان مردان است و در جامعه دیگر به نام انگا این تعداد به سی و پنج درصد می رسد. در اکوادور شاید پنجاه درصد از واورانی های بالغ قربانی خشونت انسانی می شوند. به مرور زمان و با تکامل ساختارهای گستردهتر اجتماعی نظیر شهرها دولتها و نظامهای پادشاهی خشونت انسانی تحت کنترل درآمد اما ایجاد چنین ساختارهای کارآمد و گسترده سیاسی به هزاران سال وقت احتیاج داشت زندگی روستایی برای کشاورزان اولیه قطعاً یک سری امتیازات فوری به دنبال داشت مثل محفوظ بودن در برابر حیوانات وحشی، باران و سرما. ولی شاید برای یک فرد معمولی زیانها بر فواید می چربید. این چیزی نیست که انسانهای جوامع رفاه امروزی از آن استقبال کنند. از آنجایی که ما از رفاه و امنیت فخرمند هستیم و این بر بنیانهای انقلاب کشاورزی معنا شده به این دلیل انقلاب کشاورزی را موفقیتی می میدانیم. ولی قضاوت راجع به یک مقطع تاریخی کهن هزاران ساله از یک چشمانداز نوین کار اشتباهی است این درست مثل موردی میماند که دختر سه ساله ای در قرن اول به دلیل گرسنگی در حال مرگ است زیرا محصول کشت پدرش از بین رفته و دختر بگوید من از گرسنگی میمیرم. اما دو هزار سال بعد مردم غذای زیادی برای خوردن خواهند داشت و در خانه های بزرگ مجهز به تهویه مطبوع زندگی خواهند کرد. پس رنج من یک فداکاری ارزشمند است. پس گندم چه چیز با ارزشی را به کشاورزان و از جمله به این دختر چینی قهدی کشیده داد؟ گندم هیچ مزیتی برای افراد نداشت ولی برای گونه انسان خردمند سمر بخش بود. کشت گندم غذای بسیار زیادتری را در هر قلم رو زمین معینی عرضه کرد و امکان ازدیاد شگفتانگیز گونه انسان خردمند را به وجود آورد. در حدود سیزده هزار سال قبل از میلاد، زمانی که انسان از طریق جمعوری گیاهان وحشی و شکار حیوانات وحشی تغذیه می‌کرد، واه ها و آبادی های حوالی عریها در فلسطین می یک گروه پرسزن مرکب از حداقل صد نفر را در وضعیتی نسبتاً سالم در حمایت جغرافیایی خود قرار دهند. قریب به هشت و 8500 سال قبل از میلاد یعنی زمانی که گندم جای گیاهان وحشی را گرفت همان واحه ها یک روستای فشرده هزار نفره را در خود جای میداد که از شرایطی مشقت بار تقضیه بد و بیماری رنج می بردند. واحد ارزشی تکامل نه گرسنگی و نه رنج بلکه تعداد نسخه های مارپیچی دی بود همانطور که موفقیت اقتصادی یک شرکت تنها از طریق تعداد دلارهای انباشته شده در حساب بانکی آن شرکت محاسبه می شود و نه از روی کامیابی کارکنانش، موفقیت تکاملی گونه ها هم از روی تعداد نسخه های DNA ای آنها تعیین می شود. درست همانطور که یک شرکت بدون درآمد ورشکست می شود، توقف تکثیر DNA ای در گونه ها هم باعث انقراض آنها خواهد شد. اگر گونه‌ای دی‌ان‌ای هرچه هرچه بیشتر تکثیر پیدا کند، به موفقیت بیشتری دست پیدا کرده و آن گونه شکوفا می‌شود. از این زاویه نگرش، هزاران نمونه تکثیر شده بهتر از صد نمونه است. این ماهیت انقلاب کشاورزی است. توانایی زنده نگه داشتن هر چه بیشتر افراد انسانی تحت نامساعدترین شرایط اما چرا افراد باید به این محاسبه تکاملی بها بدهند چرا یک فرد عاقل سطح رفاهی زندگی خود را تنزل دهد تا تعداد های انسان خردمند را تکثیر کند هیچ کس با این معامله موافق نبود انقلاب کشاورزی یک دام بود دام تجمل توصیع کشاورزی پدیده ای تدریجی بود که صدها و هزاران سال به طول انجامید. اینطور نبود که یک گروه انسان خردمند که با گردآوری قارچ و مغز میوه و شکار آهو و خرگوش ارتضاق می کرد به طور ناگهانی در یک ده ساکن شود، مزرعه شخم بزند، گندم بکارد و از رودخانه آب بیاورد. این گذار به طور گام به گام و با تغییراتی جزئی در زندگی روزمره شروع شد. انسان خردمند در حدود هفتات هزار سال پیش به خاورمیانه رسید و تاییه پنجاه هزار سال بعد از آن بدون انجام فعالیت کشاورزی به نشو و نمای خود ادامه داد. منابع طبیعی منطقه برای بقای او کفایت می کرد. در دوران فراوانی تولید مثل بیشتری می و در مقاطع کمبود فرزندان کمتری متولد می شدند. انسان مانند بسیاری از پستانداران دیگر هورمون‌ها ها و سازوکار های ژنتیک ویژه دارد که بازتولیدش را تحت کنترل قرار می دهد. زنان در شرایط مساعد زودتر به بلوغ جنسی میرسند و امکان بارداری برایشان بیشتر می شود. در شرایط دشوار بلوغ دیرتر صورت میگیرد و بارداری هم کمتر می شود. عوامل فرهنگی هم به این عوامل کنترل طبیعی جمعیت اضافه شد. نوزادان و کودکان که قابلیت تحرک کمی داشتند و نیاز به مراقبت‌های زیادی داشتند، به باری برای اشایره خوراکجو بدن میشدند. بنابر این، مردم سه تا چهار سال میان زایمانها وقفه میانداختند. زنان با پرستاری شبان روزی از نوزادان تا سنینی بالاتر این فاصله را ایجاد می‌کردند. شیردادن شابان روزی به نوزاد به طور چشمگیری امکان باردار شدن را کم می کند. روش دیگر از جمله سخت جنین، نوزادکشی و پرهیز کامل یا ای از روابط جنسی بود که می توانست ریشه در تابه فرهنگی داشته باشد. در طی این هزاره های طولانی، انسان گاه و بیگاه از دانه ی گندم تغذیه می کرد اما این بخشی هاشیه ای از تغذیه او بود. در حدود 18 هزار سال پیش آخرین دوران یخبندان به سر رسید و یک دوران گرمایش زمین آغاز شد. وقتی دما بالا رفت بارندگی هم بیشتر شد. شرایط اقلیمی جدید برای گندم و دیگر غلات در خاورمیانه میانه مطلوب بود زیرا امکان تکثیر و رشد آن را چندین برابر میکرد مردم از آن پس بیشتر گندم می‌خوردند و در ادامه صحبا رشد آن را گسترش دادند. از آنجا که امکان خوردن دانه وحشی بدون قربال و آسیاب کردن و پختن ناممکن بود، کسانی که آنها را جمع‌آوری می‌کردند برای انجام این مراحل آنها را به اردوگاه زندگی موقت خود می‌بردند. دانه گندم ریز و فراوان است، به این دلیل بخشی از آن به طور اجتناب در مسیر راه به اردوگاه به زمین می‌افتادند، و گم میشدند و به مرور زمان در نزدیکی سکونتگاه هایشان شروع به رویی در وقتی انسان جنگل و بیشه ها را می شرایط مساعدتری تری برای رشد گندم فراهم می شد. آتش زمین را از درخت و ساقه پاک می کرد و امکان رسیدن نور خورشید، مواد غذایی و آب به گندم و دیگر غلات را بیشتر می وقتی گندم به طور خاص بیشتر شد و حیوانات شکار و دیگر منابع غذایی افسایش یافت دسته های انسانی به تدریج از زندگی چادر نشینی خود دست کشیدند و در اردوگاه های فصلی و حتی دائمی ساکن شدند آنها در ابتدا احتمالاً به مدت چهار هفته در زمان درو اتراغ می کردند. بعد از یک نست، وقتی کشت گندم تکثیر و افزایش بیشتری پیدا کرد، دوره درو به پنج و شش هفته افزایش یافت و در نهایت اردوگاه برای سکونت دائمی به روستا بدل شد. اسناد مربوط به چنین اقامتگاههایی در خاور میانه و خصوصا در شرق مدیترانه نشان میدهند که فرهنگ ناتوفی از دوازده هزار و پانصد سال تا نه هزار و پانصد سال قبل از میلاد چکوفا شد ناتوفیها شکارگر خوراکجو بودند و از طریق دهها گونه گیاه وحشی ارتضاق می‌کردند. اما آنها به صورت دائم در روستاها زندگی می کردند و بسیاری از اوقات خود را به طور فشرده به گردآوری و آماده سازی قلات وحشی می گذارندند. آنها خانه های سنگی و انبار قله می ساختند و برای دوران سخت غلات ذخیره می کردند. آنها ابزارهای جدیدی مثل داس سنگی برای درو کردن گندم وحشی و حاون و دسته هاون برای آسیاب کردن ابدا کردند. در طی سالیان بعد از 9500 سال قبل از میلاد، اخلاف ناتوفی به جمعوری و آمادهسازی غلات ادامه دادند، اما به طرق ماهران آنها را کشت هم می کردند. وقتی غلات وحشی جمع می کردند، بخشی از محصول جمعآوری شده را برای کاشتن در فصل بعدی کنار می گذاشتند. آنها یاد گرفتند که اگر بعض را به جای ریختن روی سطح زمین به طور امیغتری در زمین بکارند، محصولشان خیلی بهتر خواهد شد. بنابراین شروع به بیل زدن و شخم زدن کردند. آنها همچنین به مرور یاد گرفتند که زمین کشاورزی را از الفهای هرز پاکسازی کنند و از کشت در مقابل انگلها محافظت کنند و زمین را آبیاری کنند و کود بدهند. به همان نسبت که تمام سعی خود را روی کشت قللات متمرکز میکردند، وقت کمتری برای جمعوری خوراک و شکار یافتند. خوراکجویان به کشاورزان تبدیل شدند. هیچ تفاوت تعیین کننده ای میان زنانی که گندم وحشی جمع میکردند و زنانی که گندم خانگی میکاشتن نبود. بنابراین مشکل به توان گفت که گذار به دوران کشاورزی دقیقا چه زمانی رخ داد؟ اما در هشت هزار و سال قبل از میلاد خاورمیانه میانه مملو از روستاهای دائمی بود مثل عریها که ساکنانش بیشترین مخت خود را صرف کشت معدودی از گیاهان اهلی می کردند با جایگیر شدن در روستاهای دائمی و افزایش منابع غذایی جمعیت رو به افزایش رفت دست کشیدن از شیوه زندگی چادر نشینی این امکان را برای زنان فراهم کرد تا هر سال یک فرزند جدید به دنیا بیاورند. نوزادان در سلین پایین از شیر گرفته می شدند و با فرینی تغذیه می شدند. در مزرعه به شدت نیاز به کمک مزاعف احساس می شد. اما حتی اگر مزاره بیشتری کشت می شد، نانخورهای جدید به سرعت زخیره به را می بلیدند. از زمانی که مردم شروع به زندگی در روستاهای بیماری زده کردند و کودکان به جای شیر مادر بیشتر با فرینی تغذیه می شدند و با خواهر و برادرهای بیشتر و بیشتری بر سر فرینی رقابت می کردند مرگ و میر کودک هم بیشتر میشد در اکثر جوامع کشاورزی حداقل یکی از سه کودک قبل از رسیدن به 20 سالگی میمرد اما افزایش موالید از افزایش مرگومیر پیشی می گرفت انسان به تولید فرزندان بیشتر ادامه داد گندم ارزان به مرور زمان بیش از پیش به بار سنگینی بدل شد به انبوه مرگومیر کودکان اضافه می شد و بزرگسالان نان خود را با عرق جبین به دست می یک فرد معمولی ساکن عریها در مقطع 8500 سال قبل از میلاد زندگی دشوارتری از یک فرد معمولی ساکن عریها در مقطع 9500 یا 13000 سال قبل از میلاد داشت. اما هیچکس درک نمیکرد که چه اتفاقی دارد آن هر نسلی مثل نسل قبل از خود زندگی میکرد و تنها چیزی که اتفاق میافتاد یک بهبودی ناچیز در این یا آن زمینه بود. اما مجموعه ای از دستاوردها که به منظور ساده تر کردن زندگی به وجود میآمد خود چون باری سنگین بر گرده این کشاورزان قرار می گرفت. چرا مردم چنین محاسبهی غلط سرنوشت سازی کردند؟ درست به همان دلیل که محاسباتشان در طول کل تاریخ اشتباه بود؟ مردم از درک کل عواقب تصمیماتشان ناتوان بودند؟ هر جا تصمیم میگرفتند، گامی به جلو بردارند، مثل شخم زدن به جای پاشیدن بعض روی سطح زمین، به خود می سختتر کار خواهیم کرد اما محصول بیشتر خواهد شد. نیازی به نگرانی برای سالهای کم بود نیست، فرزندان ما هرگز سر زمین نخواهند گذاشت. این یعنی اگر سختتر کار کنی، زندگی بهتری خواهی داشت. تدبیر این بود، اولین قسمت از برنامه راحت تر پیش رفت. مردم واقعا سخت کار می کردند. اما نمی توانستند پیشبینی کنند که تعداد بیشتر فرزند به معنای این است که گندم اضافه باید بین این تعداد تقسیم شود. این کشاورزان اولیه همچنین ناتوان از درک این مطلب بودند که تقضیه نوزادان با فرینی به جای شیر مادر دستگاه خود ایمنی بدن را ضعیفتر خواهد کرد و سکونتگاه های دائمیشان منچه بیماری های افونی خواهد شد. آنها نمیتوانستند پیش بینی کنند که افزایش وابستگیشان تنها به یک منبع غذایی به این معنی می توانست باشد که خود را بیشتر در معرض تنگنا و قهدی قرار دهند. آنها همچنین نمیتوانستند پیش بینی کنند که بودن انبار قله می توانست دوستها و دشمنها را اقوا کنند و این خود آنها را ملزم به ساختن دیوار و گماشتن نگهبان خواهد کرد. پس چرا انسان‌ها وقتی می‌دیدند که برنامهشان نتیجه معکوس می‌دهد از زندگی کشاورزی دست نمی‌کشیدند؟ بعضن به این دلیل که نسل‌ها طول می‌کشید تا تغییرات کوچک به حدی برسند که موجب تغییر جامعه شوند و تا آن زمان کسی به خاطر نمی‌آورد که مردم قبلاً به گونه دیگری زندگی می‌کردند. و بعضن به دلیل اینکه افسایش جمعیت تمام پلها را پشت سر خراب می‌کرد. اگر روش شخم زدن جمعیت یک روستا را از صد نفر به صد و ده نفر افزایش میداد کدام ده نفر خود را داوطلب برای قهتی کشیدن میکردند تا دیگران به زندگی خوش گذشته برگردند راه برگشتی نبود تله انسان را در خود می میفشرد دویدن به دنبال یک زندگی آسانتر به یک زندگی دشوارتر انجامید و این آخرین بار نبود این همان چیزی است که امروز اتفاق میافتد. معلوم نیست چه تعداد از جوانان فارغ و تحصیل دانشگاه ها در شرکت‌های قدرتمند استخدام می شوند و وظایف پرزحمتی را به عهده میگیرند به این امید که بعدها بتوانند استراحت کنند و بتوانند در سن سی و پنج سالگی با آرزوهای واقعی خود جامعه عمل بپوشانند. اما آن زمان به تدریج فرا می رسد. آنچه دارند یک وام مسکن کلان، فرزندانی که به مدرسه می روند، خانه ای در حاشیه شهر که داشتن دو اتومبیل را برای خانواده ضروری می کند و داشتن این احساس که زندگی بدون وجود شراب خوب و مسافرت پرخرج خارج از کشور ارزشی ندارد. آیا تصور می کنید که آنها گذشتهشان را مرور خواهند کرد و به ریشه یابی آنچه اتفاق افتاده خواهند پرداخت؟ نه. آنها از آن به بعد دو برابر تلاش خواهند کرد و به بردگی خود ادامه خواهند داد. یکی از قوانین طلایی تاریخ این است که تجمل به ضرورت بدل خواهد شد و بذر الزامات آینده را خواهد کاشت. وقتی کسانی به تجملات خوب گیرند دیگر به بدیهیات زندگیشان تبدیل خواهد شد و از آن پس بنای خود را روی آن شیبه زندگی قرار خواهند داد. نهایتا به جای می‌رسند که دیگر نمی‌توانند بدون تجملات زندگی کنند. بگذارید به نمونه آشنا از زمان حاضر اشاره کنیم. دهه های اخیر اختراعات بیشماری به وجود آورده ایم تا سرعت کارها را بیشتر کنیم و وقت بیشتری برایمان ذخیره شود و به این نحو زندگی را آسان‌تر کنیم. مثل ماشین لباسشویی، جاروبرقی، ماشین ظرفشویی، تلفن، کامپیوتر و ایمیل. قبلا نوشتن یک نامه نوشتن آدرس و زدن تم روی پاکت پستی و انداخن آن در صندوق پستی وقت زیادی می گرفت. روزها یا هفته ها و یا حتی ماه طول می کشید تا جوابی دریافت کنیم. الان من می توانم ایمیلی را به آن سوی کره زمین بفرستم و اگر مخاطبم آنلاین باشد ظرف یک دقیقه جوابم را هم دریافت کنم. من اینجا توانستم از صرف وقت و زحمت زیادی معاف شوم. اما آیا زندگی برایم راحتتر شده؟ متاسفانه خیر. اگر به عرصه نامه برگردیم، می بینیم که مردم وقتی نامه مینوشتند که مطلب مهمی برای گفتن داشته باشند. آنها به جای اینکه که هر چرا که بلا فاصله به ذهنشان رسید روی کاغذ بیاورند، سعی می روی مطلب خود تعمق کنند و جملات خود را به خوبی تنظیم کنند و همین دقت را از مخاطب خود هم توقع داشتند. اکثر مردم شاید فقط معدودی نامه در ماه رد و بدل می‌کردند و به ندرت خود را ملزم می‌دیدند تا بلافاصله جواب دهند. من روزانه ده‌ها ایمیل دریافت می‌کنم و همه توقع دارند تا بلافاصله جواب بگیرند. ما گمان می‌کردیم که در وقت صرفه‌جویی می‌کنیم، ولی ما به جای این سرعت و شتاب زندگی را برای خود ده برابر بیشتر کردیم و اوقات خود را مملو از تشویش و دغدغه کردیم. اینجا و آنجا کسانی هستند که با تکنولوژی مخالفت می کنند و از داشتن ایمیل خودداری می‌کنند. درست مثل هزارا سال پیش که بعضی گروه های انسانی از زندگی کشاورزی تفره میرفتند تا به دام تجملات نیفتند. اما برای وقوع انقلاب کشاورزی نیازی به این نبود که تک تک گروه های موجود درگیر در انقلاب شوند. یک گروه هم کافی بود، وقتی یک گروه حال در خاورمیانه یا آمریکای مرکزی ساکن میشد و به شخم زدن میپرداخت، کشاورزی به امری اجتناب ناپذیر بدل میشد. وقتی کشاورزی شرایط افزایش سریع جمعیت را به وجود آورد، کشاورزان به اعتبار تعدادشان بر خوراکجویان غالب شدند. خوراکجویان انتخابی به جزی نداشتند که یا از میدان خارج شوند و ببینند که زمین های شکارشان به مزارع تبدیل شوند یا اینکه خودشان خیش را برای شخم زدن به دست گیرند. در هر صورت زندگی گذشته محکوم به فنا بود. داستان دام تجملات پیام مهمی با خود داشت. جستجوی بشر به دنبال زندگی راحت نیروی عظیمی را برای تغییر طلب می کرد که جهان را به آنجایی برد که هیچکس کس پیشمینی و آرزو نکرده بود. هیچکس انقلاب کشاورزی یا وابستگی انسان به کشت غلات را برنامه ریزی نکرده بود. یک سلسله تصمیمات روزمره بیشتر برای پر کردن چند شکم و دستیابی به کمی امنیت منجر به این شد که خوراکجویان کهن اوقاتشان را برای آوردن سطل آب زیر آفتاب سوزان صرف کنند. مداخله الهی. سناریوی بالا انقلاب کشاورزی را به عنوان یک محاسبه اشتباه ارزیابی می‌کند. این قضاوت بسیار معقول به نظر می‌رسد. تاریخ آکنده از محاسبات بسیار احمقانه تر از این هم هست اما امکان دیگری هم وجود دارد شاید هدف یک زندگی راحتتر نبود که مسبب به این دگرگونی ها شد شاید انسان خردمند آرزوهای دیگری در سر میپروراند و آگاهانه تلاش میکرد تا زندگی را دشوارتر کند به این منظور که آنها را متحقق کند محققین معمولاً سر می کنند تکامل تاریخ را به عوامل خشک اقتصادی و جمعیت شناسی نسبت دهند. این بیشتر با روش های منطقی و ریاضی سازگار است. در مورد تاریخ معاصر محققین نمی توانند عوامل غیرمادی مثل باورها و فرهنگها را نادیده بگیرند. شواهد مکتوب خود را بر آنها تحمیل می کند. به اندازه کافی اسناد نامه و خاطرات وجود دارد که نشان دهد که جنگ جهانی دوم به دلیل کمبود غذا و تراکم جمعیت رخ نداد. اما در مورد فرهنگ ناتوفی اسنادی در دست نیست بنابراین وقتی به دوران کهن فکر می کنیم مادیگرایانه چیرگی دارند پس مشکل خواهد بود اگر بخواهیم نشان دهیم که مردمی که در دوران قبل از تاریخ مکتوب زندگی می کردند برپایه اعتقاداتشان عمل می کردند، نه ضرورتهای اقتصادی. اما در موارد نادری، خوشبختانه به اندازه کافی سرنخهای قابل استنادی وجود دارد. در سال 1995 میلادی باستانشناسان محلی را به اسم گوبکلی تپه در زیر خاک کشف کردند که در جنوب شرقی ترکیه قرار دارد. در قدیمیترین لایه‌ها نشانی از اردوگاه، خانه یا فعالیت‌های روزمره یافته نمیشد، اما با این وجود به ساختارهای ستون‌های تاریخی که با حکاکی‌های دیدنی آراسته شده بود روبرو شدند. هر ستون سنگی تا تن وزن داشت و به بلندی پنج متر می رسید. در یک مدن در نزدیکی آنجا ستونی تراشیده یافتند که پنجاه تن وزن داشت. باستانشناسان در مجموع بیش از ده سازه تاریخی در آنجا یافتند که بزرگترین آن در حدود سی متر قطر داشت. باستانشناسان با چنین سازه های تاریخی در مکانهای مختلف در سراسر دنیا آشنایی دارند. معروفترین نمونه آن استونهنج در بریتانیا است اما در خلال مطالعه گوبکلی به نکته شگفت انگیزی برخوردند. استونهنج به 2500 سال قبل از میلاد ارجا دارد و توسط یک جامعه کشاورزی پیشرفته ساخته شده. سازه های یافت شده در گوبکلی به حدود 9500 سال قبل از میلاد برمیگردد و تمام شواهد نشان می دهد که اینها توسط شکارگر خوراکجو ساخته شده بود. انجمن باستانشناسان در آغاز برای درک این کشف با مشکل روبرو بود اما آزمایشات متوالی یکی پس از دیگری تایید کردند که هر دو سازه به همان اندازه قدیمی هستند و در دوره قبل از انقلاب کشاورزی ساخته شدند. های خوراکجویان کهن و پیچیدگی فرهنگیشان بسیار بیش از آنچه که قبلا پنداشته میشد تحسین برانگیز است چرا یک جامعه خوراکجو چنین سازه می میساخت آنها برای هیچ هدف عملی مفیدی ساخته نشده بودند این مکانها نه های مامود ها نه کشتارگاه‌های ماموتها بودند و نه پناهگاه در مقابل باران و مخفیگاه در مقابل حمله شیرها تنها نظریه باقیمانده باقی مانده این است که اینها به منظورهای فرهنگی اسرارآمیزی شناخته شدند که باستانشناسان از درک آن آجزند. هر قصدی که در پشت ساختن این بناها بوده باشد نشان می دهد که خوراکجویان صرف وقت و انرژی بی اندازه روی آنها را ارزشمند می دانستند. تنها شکلی که ساختن گوبکلی تپه را میسر می ساخت، همکاری هزاران خوراکجو از گروه‌ها و قبیله های مختلف طی مدت زمان طولانی بود. تنها یک نظام دینی یا ایدئولوژیک پیچیده می تواند در پشت چنین تلاشهایی باشد. گوبکلی تپه یک راز شگفت‌انگیز دیگر را هم در خود داشت. تای سالیان طولانی متخصصین ژنتیک به دنبال رد ریشه های گندم اهلی شده بودند. کشفیات اخیر نشان می دهد که منشأ حداقل یک نمونه اهلی شده به اسم گندم آینکورن به تپه های داغ در حوالی سی کیلومتری گوبکلی تپه برمیگردد. این یک امر اتفاقی نیست. مرکز فرهنگی گوبکلی تپه احتمالاً به نحوی با آغاز اهلی کردن گندم توسط انسان و اهلی شدن انسان توسط گندم مرتبط بوده. برای تغذیه انسان‌هایی که این بناهای تاریخی را میساختند، نیاز به وجود مقادیر غذای بسیار زیاد بود. می توانست این طور باشد که خوراکجویان موقتاً از روش معمول جمعوری گندم وحشی دست برمی‌داشتند و به کشت فشرده گندم می‌پرداختند نه برای پر کردن انبار ذخیره معمولی خود بلکه برای تأمین نیاز خوراک کسانی که معابد را می‌ساختند و اداره می‌کردند بر اساس برداشت آمیانه پیشگامان در ابتدا یک روستا می‌ساختند و وقت این روستا رونق گرفت معبدی در مرکز آن بنا میکردند. اما گوبکلی تپه گواه از این دارد که معبد قبلا ساخته شد و روستاها بعداً در حول معبد ایجاد شد. قربانیان انقلاب. معامله فاستی میان انسان و غلات تنها معامله گونه انسان نبود. معامله دیگر بر سر سرنوشت حیواناتی مثل گوسفند، بز، خوک و مرغ بود. گروه های اشیرهی که در کمین گوسفندهای وحشی می به مرور زمان خسلت های طبیعی گله هایی را که شکار می تغییر دادند. این روند شاید با شکار انتخابی آغاز شد. انسان دریافت که فقط شکار گوسفندهای بالغ نر، پیر و بیمار برایش به تر است. او گوسفندهای های ماده بارور و بره ها را نگه می داشت تا سلامت طولانی مدت گله را حفظ کند. قدم بعدی این بود که فعالانه از گله در مقابل حیوانات وحشی مثل شیر و گرگ و همچنین در مقابل گروه های انسانی رقیب حفاظت کند. مرحله بعدی می بایست این بوده باشد که گله را در تنگه ها و گلوگاهها محبوس کند تا از این طریق بهتر بتواند آن را کنترل و از آن حفاظت کند. در نهایت انسان شروع به دستجین کردن دقیق‌تر گوسفندها متناسب با نیازهایش کرد. تهاجمی ترین گوسفندهای نر یعنی آنها که بیشترین مقاومت را در مقابل انسان از خود نشان میدادند و همچنین لاغرترین ها و گوسفندهای کنجکاو ماده قبل از همه سلاخه میشدند. چوپان ها به گوسفندهای کنجکاوی که از گله فاصله میگیرند ندارند. ندارند. گوسفندها نسل به نسل چاغتر، رامتر و غیر کنجکاوتر میشدند. نتیجه بفرما، مریم مقدس برای یک داشت و هر کجا که می رفت بره هم به دنبالش می رفت. احتمال دیگری می تواند باشد که شکارگران بره ای را به دام می و در طی ماهای فراوانی او را چاق می کردند و در فصول کمبود او را سلاخی می کردند. پس از مدتی انسان شروع به نگهداری از گروه زیادی از این بره ها کرد. تعدادی از اینها به سن بلوغ می رسیدند و تولید مس می کردند. تهاجمی ترین و متمردترین ها قبل از همه سالخ می شدند و به موتی و مرغوب ها اجازه زندگی طولانی تری داده می شد تا تولید مس کنند. حاصل کار گلی اهلی و رام بود. این حیوانات اهلی شده از قبیل گوسفند، مرغ، اولاق، منبع غذایی مثل گوشت، شیر، تخم مرغ و مواد خام مثل پوست و گوشت و نیروی کار بودند. حمل و نقل و بارکشی، شخم زدن، آسیاب کردن و وظایف دیگر که تا آن موقع توسط انسان انجام میشد، بیش از پیش بر گرده‌ی حیوانات گذاشته شد. در اغلب جوامع کشاورزی تمرکز روی کشتگی یا هان قرار داشت. دامپروری فعالیتی ثانویه بود، اما در بعضی نواهی نوع جدیدی از جامعه ظهور کرد که در درجه اول بر پایه استثمار حیوانات قرار داشت که همان قبایل دامپرور بودند. حیوانات هم همپای انسان در سطح زمین گسترش یافتند. ده هزار سال قبل تنها چند میلیون گوسفند، گاو، بز، گراز وحشی و مرغ در مناطق محدودی در آفراسی زندگی می کردند. امروز در دنیا قریب به یک میلیارد گوسفند، یک میلیارد خوک، بیش از یک میلیارد گاو و بیش از 25 میلیارد مرغ وجود دارد و اینها در تمامی نقاط دنیا یافت میشوند. شوند. مرغ خانگی گسترده ترین گونه پرنده در جهان است. بعد از انسان خرادماند، گاوهاهای اهلی، خوکها و گوسفندها از نظر تعداد به ترتیب دومین، سومین و چهارمین گونههای حیوانی گسترده در جهان هستند. از یک زاویه محدود نگر تکاملی که پیشرفت را از دریچه تعداد نسخههای دی‌نی ارزیابی می‌کند، انقلاب کشاورزی سرمنشع یک موهبت عظیم برای مرغ، گاو و گوسفند بوده. نگرش تکاملی متاسفانه معیار ناقصی برای پیشرفت به دست می دهد و هر چیزی را با مقیاس بقا و تولید مثل میسنجد اما هیچ توجهی به رنج و شادی فردیت گونه ها ندارد مرغ خانگی و گاوها شاید نمونه های پیشرفت به حساب آیند اما اینها در شمار موجوداتی هستند که نکبت ترین نوع زندگی را دارند اهلی کردن حیوانات بر پایه مجموعی از فعالیت‌های بیرحمانه شکل گرفته که در طی قرون هرچه خشنتر خشن‌تر و ظالمانه‌تر شده طول عمر طبیعی برای مرغ وحشی بین 7 تا 12 سال و برای گاو بین 20 تا 25 سال است در حیات وحش اکثر مرغ‌ها و گاوها کمتر از میزان عمر کامل خود زندگی می‌کنند اما با این وجود می‌توانند سالها زندگی طبیعی داشته باشند اما تعداد کثیری از مرغها و گاوهای اهلی بعد از چند هفته یا چند ماه سلاخی می شوند زیرا این همیشه از زاویه اقتصادی بهترین سن برای سلاخی آنهاست. چرا به یک خروز سه سال غذا بدهیم در حالی که تنها در تایی سه ماه به حد اکثر وزن خود میرسد. به مرغهای های تخمگذار، گاوهای شیرده و حیوانات بارکش گاهی امکان چند سال زندگی داده می شود. اما بهای این یک زندگی در انقیاد و کاملا متضاد با تمایلات طبیعیشان است. معقول خواهد بود اگر به طور مثال بگوییم که گاو نر ترجیح می دهد که روزها را با پرسه زدن در چمنزار همراه با دیگر گاوها سپری کند نه اینکه در زیر شلاق یک میمون خیش و گاری را با خود بکشد. برای تبدیل کردن گاو نر اسب، الاق و شتر به حیواناتی مطیع و باركش قرائض طبیعیشان را مختل میکنند روابط اجتماعیشان را قطع میکنند قرائض تهاجمی و جنسیشان را تحت کنترل قرار میدهند و آزادی تحرک را از آنها میگیرند کشاورزان برای رام کردن و کنترل حیوانات فنونی را تکامل دادند مانند قرار دادن حیوانات در میان حسارهای تنگ و در قفس، افزار زدن و چشم بند زدن به آنها شلاق زدن و میخک فرو کردن به بدنشان و قطع عضو کردنشان روند رام کردن تقریبا همیشه با عقیم کردن نرها همراه است این امر تمایلات تهاجمی جنس نر را محدود میکند و تولید مثل آنها را تحت کنترل انسان قرار میدهد. در بسیاری از جوامع گینه جدید بر اساس سنت ثروت یک فرد از روی تعداد خوکهایی که دارد تعیین میشود کشاورزان شمال گینه جدید برای جلوگیری کردن از فرار ها قسمتی از بینی خوک را می‌برند این باعث می‌شود که هر وقت خوک بخواهد با بینی خود بو بکشد متحمل درد شدیدی می‌شود از آنجایی که خوک با بو کردن به دنبال غذا میگردد و راه خود را پیدا می‌کند قطع عضو کردن یا مسله کردن او باعث می‌شود که خوک کاملا به صاحب خود وابسته شود در مناطق دیگر گینه جدید مرسوم است که چشم خوک را در می‌آورند تا نتواند از محل مورد نظر خارج شود. صنایع لبنیات روش‌های خاص خود را برای مقید کردن حیوانات به خواست‌های این صنایه دارند. گاو، بز و گوسفند تنها زمانی شیر تولید می‌کنند که زایمان کنند و گوساله یا برهشان در مرحله شیرخواری باشد. کشاورز برای تولید شیر حیوانات نیاز به تولید گوساله، بره و نوزاد آنها دارد و برای در اختیار گرفتن شیر این حیوانات، نوزادان آنها را از مصرف همه شیر مادرانشان من می کند. یک روش مرسوم در طول تاریخ کشتن نوزادان این حیوانات بعد از تولد و دوشیدن منتهای شیر مادرانشان و باردار کردن مکرر آنها برای نوبتهای بعدی بوده. این روش کماکان رواج بسیار زیاد دارد. در بسیاری از دامپروریهای نوین تولید شیر یک گاو شیرده قبل از اینکه به کشدار گاف شود، در حدود پنج سال عمر می‌کند. در این پنج سال تقریباً این گاو تمام مدت باردار است و در فاصله 6 تا 120 روز بعد از زایمان مورد تلقیه مصنوعی مجدد قرار می‌گیرد تا تولید شیرش به بیشترین میزان ممکن برسد. گوساله را مدت کوتاهی بعد از تولد از مادر جدا می کنند. های ماده برای نسل بعدی تولید شیر به کار گرفته می شوند در حالی که از نرها برای تولید گوشت استفاده می کنند. یک روش دیگری است که گوساله نوزاد و فرزندان را در کنار مادر قرار می دهند اما با شگردهای مختلف مانع از این می شوند که نوزادان شیر زیادی از مادر بمکند. آسانترین روش این است که به گوساله نوزاد اجازه دهند شروع به مکیدن پستان مادر کند، اما به محض اینکه شیرجاری شیر جاری شد او را از مادر جدا می کنند. این روش معمولاً مقاومتهایی را از سوی نوزاد و مادرش برمی بعضی از قبایل چوپانی نوزاد را می کشند، گوشتش را می خورند و پوستش را با پوشال پر می کنند که برای مادر تدایی فرزندش را بکند. این عمل مادر را تشویق به ترش شیر می کند. قبله نوئر در سودان تا آنجا پیش رفت که نوزاد پوشالی را با ادرار مادر آغشته می کند تا به گوساله تقلبی یک بوی آشنا و زنده هم بدهد. یک روش دیگر نوئر این بود که حلقه ای خاردار به دور دهان نوزاد میبستند بستند به طوری که تیزی خارها مادر را بادار می کرد که از شیر دادن خودداری کند. قوم توارق که در صحراهای آفریقا شطور پرورش می‌دهند معمولاً بخشی از بینی و لب بالایی شطور نوزاد را سوراخ می‌کنند یا میبرند و این باعث می‌شود که عمل مکیدن زجرآور شود و شیر کمتری مصرف کند. همه جوامع کشاورزی تا به این حد در مقابل حیواناتشان بیرحم نبودند. زندگی بعضی از حیوانات خانگی می توانست خوب هم باشد. گوسفان هایی که برای پشم پرورش داده میشدند سگ و گربه اسب جنگ و اسب های نژادی غالبا شرایط خوبی داشتند امپراتور روم کالیگولا در نظر داشت اسب مورد علاقهش به اسم اینسیاتاتوس را به مقام مشاور منتصب کند چوبانها و کشاورزان در طول تاریخ نسبت به حیواناتشان احساس محبت داشتند و به خوبی با آنها رفتار می کردند. درست مثل برددارانی که با محبت و توجه با بردگانشان رفتار می کردند. اما از زاویه نگرش حیوانات و نه چوبانها نمی توان به نتیجه دیگری بجز این رسید که انقلاب کشاورزی برای اکثریت عظیم حیوانات اهلی معادل با فاجعهی مخوف بوده. رونق عبارتی پوچ است یک کرگدن وحشی نادر در آستانه انقراض شاید بسیار خوشبختتر از گوساله‌ای باشد که ناچار از تمام زندگی کوتاهش را در درون یک قفص تنگ سپری کند و پروار شود تا بعد از آن به کباب لذیذی تبدیل شود کرگدن رازی شاید چندان ناخشنود هم نباشد که جزو آخرین اعضای گونه خودش باشد کسرت تعداد گونه گوساله، گوساله‌های تحت شرایط مشق را چندان خوشحال نخواهد کرد. ناسازگاری میان دو عامل رونق تکاملی و رنج فردی شاید مهمترین درسی باشد که ما میتوانیم از انقلاب کشاورزی بگیریم. وقتی روایت گیاهانی مثل گندم و ذرت را مطالعه می کنیم، شاید چشمنداز خالص تکاملی در مورد آنها مفهوم داشته باشد. اما از زاویه حیواناتی مثل گاو، گوسفند و انسان خردمند هر کدام با دنیای پیچیده احساسات و عواطف خود باید پیامدهایی را که رونق تکاملی بر تجارب فردی به دنبال دارد در نظر داشته باشیم. در فرصهای بعدی به کررات خواهیم دید که افزایش شگفت‌انگیز نیروی جمعی و موفقیت ظاهری گونه ما چگونه با رنجهای عظیم فردی در هم تنیده شد؟